حسل هفته هم شیگه کو هنگام برخواستن به علت خستگی ناشی از پرستاری دچار سرگیجه می شود. پس برای یاسوکو همراهی در بیمارستان گذاشتند. قرار شد شیگه ماتسو روزهای فرد برای عیادت به بیمارستان برود. روزهای زوج هم تا کامارو پدر یاسوکو برای ملاقاتش میرفت رفت. شیگه کو مشکل قلبی پیدا کرد. عواست ماه اوت که شد، روزها با گرمای طاقت فرسا ادامه یافتند. به ندرت این وضعیت در دشتهای مرتفع پیش می آمد. وضعیت یاسوکو حتی به چشم افراد غیر متخصص هم ناامید کننده به نظر می رسید. می گفت گوشش سوت می کشد. اشتها نداشت. وقتی موهایش شانه می کرد، مقداری از موهایش کنده می شد. ورم سرخ لسه هایش هم آشکار شده بود. دکتر کوئیشیکی رئیس بیمارستان آن را التهاب لثه تشخیص داد. برای تست مانتو خون گرفت و برای یک روز دیازین تجویز کرد. این همان قرص روز دوم بستری شدن بود و هر چهار ساعت یکی باید میخورد. مجبورم این دارو را دوباره بخورم؟ یاسوکو مردد بود. شیگاماتسو گفت: باید بخوری. حرف همراه یاسوکو این بود که در روز یک بار دردش شدیدی به بیمار حمله ور می شود. فقط در همین مواقع هم دردش تحمل ناپذیر است از درد به خودش می‌پیچد. تمام بدنش ماننده یک گلوله درد می شود به خصوص بیشتر در نیمه شب این وضعیت رخ می‌دهد. بیمار از درد لاغر و تکیده شد لبهای خشکیدهش مانند پوستش پرید رنگ و ناخنهایش خاکی شدن داخل دهان را ببین این را گفت و دهانش را باز کرد دندان پیشین در بی خبری افتاده و ریشهشان به مانده بود اگرچه تا چند روز پیش آنها لق بودند و ریشهشان تکان می‌خورد، حالا افتاده بودند از لسه های ورم کرده بی خون نشت می‌کرد. حتی با قرغره کردن اسید باریک هم خون بند نمی‌آمد. لبهایش را که برای مدتی بسته نگه می داشت، چیزی مانند نخی سرخ در محل بسته شدن لبها ظاهر میشد. بر کفلهایش دو ورم جدید کنار هم رشد کرده بود که به شکل دو کدو قلیایی بودند. شش ورم کهنه او هم با جراحی جدا شدند اما جای زخم آنها درمان نشد. گوشت سرخی بر آن رویید که درست مثل هندوانه شکسته بود. پوست اطراف آن کمربندی از رنگ فاسد شده سربی داشت. خود ماتسو اینها را ندید. هنگام برگشتن پرستار تا پله همراهش آمد و اینها را گفت. فقط حرفهای ناامید کننده بود. وقتی با رئیس بیمارستان هم ملاقات کرد و از او پرسجو کرد، باز جواب امیدوار این نشنید. رسوب خون خوب نیست. به هر حال در خون تصویری از چیزی ناشناخته به وفور وجود دارد. گلبول های قرمز خون هم از نصف کمتر شدند. دکتر او را فقط از سر باز می کرد. تصویر چیز ناشناخته شاید شکل متفاوتی از گلبول های سفید بود. دکتر گفت اگر گلبول های سفید باشند، تعدادشان خیلی زیاد شده است. شیگه دیگر نمی خواست این لحن ترساننده دکتر را بشنود. هر لحظه نسبت به یاسوكو احساس مسئولیت بیشتری می‌کرد. اینکه یاسوکو دچار بیماری اتمیشو شد فقط به دلیل باریدن باران سیاه بر او نبود. احتمالاً به خاطر پیاده گشتن در خاکستر آوارهایی هم بود که هنوز حرارت داشتند. بین راه عزیمت از پل آی‌آی به شهرک ساکان، هنگامی که با حالت خزیده پیش می‌رفتند، زانوی چپ یاسوکو خراشیده شده بود. به نظر نمیرسید این زخم هم موجب مرگ شود. هرچند بیان اینها اکنون فایده ای نداشت اما اجبار در پیاده رفتن از شعبه حمل و نقل ژاپن در اوجینا به محل کارخانه در فرویچی دردسر ساز بود. اگر شیگه ماتسو از آقای سوگیمورا رئیس آنجا تقاضا می کرد بیشک یا دو تا سه شب می توانست در شعبه حمل و نقل بماند. از این نظر هم شیگه ماتسو احساس مسئولیت می کرد. پیش از آن هم کسی که یاسوکه را به هیروشیما آورد شیگه ماتسو بود. از دکتر حساگاوا در روستای یودا نامه همراه یاد هایی در پاکتی جداگانه رسید. جناب آقای شیزو ما شیگه ماتسو از اینکه بی مقدمه به اصل مطلب می پردازم میخواهم. ماهی قزلالای خشک شده ای را که چند روز قبل هنگام ملاقات به عنوان سوقات لطف نمودید با قدرشناسی صرف کردیم درباره موضوعی که آن موقع بیان کردید بعد از اندیشه فراوان یادداشت های زیر را می مینویسم در مورد دامادمان بهبودی او فقط به شانس و تقدیر بستگی داشت در این میان من هم با تزریق رینگر و خون چیزهایی را آزمودم. می‌خواهم نکاتی را کاملاً بفهمید. به خاطر رجوع شما، یادداشت‌های دامادمان را جمع کردم که جداگانه ارسال می‌کنم. اولین نکته این است که حتی برای من هم به عنوان یک پزشک، سوء تفاهمهایی در مورد عدم درمان وجود دارد. دوم اینکه، بسیار ضروری است که خود بیمار هم دارای روحیه جنگندگی بالایی باشد. مرحله آخر این که شانس و تصادف حتی ممکن است باعث بهبودی معجزه بیماران بسیار وخیم هم بشود. بعد از خواندن یادداشت ها لطفاً آنها را به من برگردانید. باز هم برای سلامت بیمار از سمیم دل دعا می کنم. به امید دیدار دوباره، حسوگا و آری یادداشت ها عنوان یادداشت های هیراشی وضع پشتیبانی بهداری ارتش هنگام بمباران اتمی هیروشیما را داشت. احتمالاً دکتر هوساگاوا با توجه به درخواست ناممکن شیگ ماتسو به ایواتاکه در توکیو تلفن کرده و از او درخواست کرده بود این یادداشتها را فراهم کند. شیگ ماتسو در حالی که آن را کنار بالش شیگکو می‌خاند، چند بار گفت: "معجزه است." شیگکو هم چند بار گفت: برای یاسوکو هم باید بخوانیدش. همانطور که زن صاحب آسیاب آبی گفته بود آقای ایواتاکه شدیدتر از امثال آقای شیگه ماتسو زخمی شده بود آنقدر لاغر و تکیده شده بود انگار اسکلتی بیش نبود انگشتان دستش به هم چسبیدند لاله گوشش را کرم خورد و نابود شد یک بار مرد و دوباره زنده شد بعد با جراحی پلاستیک انگشتانش را مثل انگشتان انسانهای عادی ترمیم کردند و اکنون در توکیو به تبابت مشغول بود یادداشت های او اینطور نوشته شده بود برگه سرخ فراخان به خدمت اجباری در واحد نظامی شماره دو هیروشیما را در تاریخ اول ماه جولای سال بیستم شوا دریافت کردم با عجله دوروبرم را مرتب و از توکیو به سمت غرب حرکت کردم ناگویا و اوساکا در جنگ خسارت زیادی دیده بودند. در اوکایاما از لحظه ورود باران نم نم می بارید. از ایستگاهی گذشتیم که هنوز بر اثر بمباران هوایی دیشب میسوخت. آوارگان نیم اوریانی لحاف بر سر کشیده بودند و کنار مسیر قدم میزدند. در فکویاما از قطار پیاده شدم. با زن و فرزندم که برای برنامه پراکند سازی به روستای یودا آمده بودند، ملاقات کردم. یونیفرم رسمی ارتشی پوشیدم. سبیلم را زدم و سرم را از ته تراشیدم. کلاه جنگیم را با پارچهی پوشاندم و کیسه انفرادی سربازی را به دوش گرفتم. همسر و دامادمان بدرقم کردند و سوار قطار مسیر فکوشی شدم. گفته میشد فراخان این دفعه تا چهل و پنج سالگی را شامل می شود. من درست در آخرین حد قرار داشتم. یعنی در چهل و پنج سالگی سرباز جدید قوای مسلح شدم. حال عکس گرفتن را برای شهید شدن احتمالی نداشتم. یک شب در خانه اقوامم در هیروشیما اقامت کردم. ساعت هشت صبح اول ماه جولای، برای اولین بار در عمرم وارد پادگان شدم. حدوداً پنجاه نفر در صحن مقابل بهداری پادگان تجمع کرده بودیم. فقط متولدان شهرستان هیروشیما و شهرستان اوکایاما بودیم. ظاهراً افرادی که از شهرستان یاماگوچی آمده بودند در هنگ نظامی یاماگوچی و افرادی که از مناطق شهرستان شیمانه آمده بودند در هنگ هامادا به خدمت گرفته شده بودند. از ابتدا نبجا جاهای آموزش پشتیبانی بهداری که به واحد پیاده نظام فرستاده شدیم. در صحنه جلوی و زیرا آفتاب داغ یک ساعتی منتظر نگهمان داشتند و بعد هم ما را بر کف چوبی اتاقی به وسعت 20 تا تامی نشاندند سرانجام رئیس بیمارستان شماره یک نیروی زمینی مردی تنومند با قد 180 سانتی متر به نام سرهنگ دوم پزشک، وشیو. همراه دو نظامی دیگر به صحنه آمد و در جایگاه نشست. بعد از حضور و قیاب حاضران، سخنرانی بسیار تند افتتاحیه شروع شد. من سرهنگ دوم پزشک واشی هستم. چرا شماها در این جنگ مسئله هست و نیست ملی است، تا کنون داف طلب خدمت نشده بودید؟ شماها ها ترسوهای خائن هستید؟ با توجه به این معنا و طبق فرمان، این دفعه شما به خدمت تنبیهی و اجباری فراخوانده شده اید. پس باید با تمام وجود خدمت بکنید. از این لحظه به بعد زندگی شما در دست ماست. تا کنون با شما بسیار خوب رفتار می شده و جایگاه مناسبی داشته اید. اما در ارتش دانش شما کاربردی ندارد. از این به بعد باید همه تلاشتان این باشد که لبریز از روحیه نظامی شوید. بعد از آن حاضران یکی یکی مقابل سرهنگ دوم رفتند و مشخصات و سابقه خود را ذکر کردند. سرهنگ هم در مورد اینکه چرا تا کنون داوطلب اند، از آنها باز خواست کرد. یک نمونه از فرم هایی را که ماه اول سال پیش برای هنگ هیروشیما در لشکر شماره یک فرستاده بودم از کیسم بیرون آوردم. این فرم ثابت می کرد که من قبلا داوطلب شده بودم؟ پس بازخاست سرهنگ در مورد من نیمه کار ماند. افراد قبل من و نیز کسانی هم که در ادامه خواست شدند، فرمهای داوطلبی عرضه کردند. افراد زیادی هم پارسال و سال پیش از آن فرا خوانده شده بودند. اما به دلیل نقص بدنی، روز بعد از آن به خانه هایشان برگردانده شده بودند. بعد از آن معاینه بدنی شروع شد. میان هم قطاران کسی وجود نداشت که بدن و اندام رشک برانگیزی داشته باشد. فردی به دلیل پوکی ستون فقرات شکم داشت. یکی به خاطر التهاب قدد لنفاوی گردنش را بسته بود. یکی زخم ناسور بعد پوکی ستون فقرات داشت. یکی هم بود که در دوره دانش و در ساعت ورزش استخان پایش شکسته و حالا پایش خم نمی شد. شاید برگه های قبلی بررسیان ها گم شده بود. یک نفر انگار بخواهد رو در روی حریف خیالی کشتی بگیرد در حالی که با بینی و صدای خرخر نفس میکشید کشید نزدیک سرهنگ آمد. هنگامی که سرانجام به نظر رسید ایستادنش کامل شده یکی از پزشکان متولد هیروشیما زیر لبی خندید و دهندره بزرگی کرد. رئیس بیمارستان با تحکم جلو آمد و به این پزشک سیلی زد. وقتی این پزشک داشت تلو تلو می‌خورد، خورد، سرهنگ سه چهار سیدی دیگر هم اضافه کرد. حالتی که عوام به آن چپا راست شدن می‌گویند. با این کار زشت، با آن پزشک احساس همدردی و حال بدی پیدا کردم. با توجه به نتایج رادیولوژی و بررسی بزاق، قرار شد چند نفر همان روز به خانه اشان برگردانده شوند. کسانی هم به علت کمبود پزشک در بیمارستان به زادگاهشان برگردانده شدند. افرادی که کیسه هایشان را به دوش گرفتند و با چهره ای شادمان برگشتند، شادیشان را پنهان می میکردند، اما واقعا به آنها حسودی میشد. با این مقدمات، آقای ایواتاکه و سایر افراد به پیاده نظام وارد. به آنها مدت پنجاه روز آموزش‌های مقدماتی داده شد. هدف این آموزش این بود که در صورت بروز جنگ زمینی، آنها با بغل کردن بمب خود را جلوی نیروی زرهی دشمن بیاندازند. تمرین دویدن سمت جلوی ماکت های تانک های چوبی دشمن، چیز دستداری را که شکل بمب بود سمتشان پرت کردن و بلافاصله روی زمین دراز شدن را هر روز ده ها بار تکرار میکرد روزهای بعد، با توجه به آنچه به آموزش اضافه شد، فهمیدن که این واحد نظامی به خدمت تنبیهی فراخوانده شده. قرار است واحد نظامی بازدارنده دشمن در ساحل دریا باشد. در واقع، مرگ هر یک از آنها باید یک دستگاه ماشین جنگی دشمن را منهدم می کرد. چهارده ماه جولای، دستور انتقال آنها از واحد پیاده نظام به محل آموزش بیمارستان شماری دو نیروی زمینی صادر شد و آنها به ساختمان دو طبقه پادگانی در حوالی رودخانه اوتا منتقل شدند. آن وقت گروه شهرستان یماگوچی و گروه هاماده هم رسیدند که در مجموع هشتاد نفر بودند. در هم ادغام و مجموعاً صد نفر شدند. مسئول آموزش، سطفان ثوم یو شیوارا جوانی 23 ساله بود پزشکی ارتشی که در مدت کوتاهی از دانشگاه علوم پزشکی در پیون یانگ فارغ و تحصیل شده بود نطخ آموزشی او از سخنرانی سرهنگ دوم و او هم تونتر بود اینجا پادگان مشهوری است معروف به پادگان شیطان شماها تازه وارد این پادگان شده اید و لازم است آمادگیتان را تشدید کنید برای شما که تا الان راحت بودید از اول تا آخرش سخت خواهد بود تحت فرمان ارشدتان به سختی آموزش خواهید دید یک شماها؟ این چونین نطق می کرد و کنار آن می گفت تلاش بکنید اما بیش از نصیحت هدفش ایجاد احساسی تاریک در ما بود بعد از این معزه سه نفر سه نفر به دفتر فرماندهی فراخوانده شدند و وضعیت خانواده و موقعیت اقتصادی آنها ثبت شد. شاید قرار بود مرجعی برای تقسیم افراد در مناطق خطرناک باشد. سرانجام روز بعد آموزش‌های وحشیانه شروع شد. آقای ایواتا که نوشته بیشتر از این که واحدی نظامی باشد، در واقع جایی عین زندان بود. باز نوشته صبح بارها و بارها به شکلی نامعمول فقط برای خنده فراخانده می شدیم. در مه صبحگاهی گاهی سه تا چهار کیلومتر ما را می دواندند. از پل آی آی عبور می کردیم که به ایزد کده گوکوکو می رسید. از پشت معبدی سوای معبد هنگان به سمت شمال دور می زدیم. با گذشتن از پل آی آی و خارج شدن از ایزد کده نگیتسو، به پادگان برمیگشتیم تقریبا از پا میافتادیم بیمارانی با تب جزئی و بیماران اسهادی شمارشان رو به افسایش گذاشت کسانی هم بستری شدند یونیفرم نظامی تا حدی که میشد چلاندش خیس عرق میشد این وقتی بود که تمرین سین خیز میکردیم اگر کمرمان بالا بود با پوتین به باسن لگد میزدند و اگر سر تفنگ پایین بود به شانه. زانوهامان به خاطر برخورد با زمین خراشیده میشد و ازشان خون میآمد. آقای ناکامورا عضو بهداری که در شهر توکایاما زایشگاهی را اداره میکرد، نزدیک به 90 کیلو وزن داشت. پارسال یک روز بعد از اینکه حاضر به خدمت شده بود به دلیل بزرگ شدن بیش از حد شکمش، هیپرتروفی، به خانه برگردانده شد امسال او باز به خدمت گرفته شد برای او حمل اسلحه با داده است و سین خیز رفتن غیر ممکن بود یاشیوارا چندین بار به باسن او لگد زد چون عقب افتاده بود اشک تلخ آقای ناکامورا جاری و انقدر ناراحت شد که به فکر خودکشی افتاد مردی شده بود که هیچ کاری نمیتوانست بکند و چنان بود انگار از پسرش لگت خورده مانند پدری که پسرش او را تهدید کند رنگ خجالت و ناامیدی را در چهرش نمی توانست پنهان کند ای و که اینها را نوشته بود روز ششم ماه اوت حدود ساعت شش صبح آشیر حمله هوایی به صدا درآمد. دو تا سفروند به بیست سمت جنوب رفتند بدون اینکه یک بمب هم بیندازند چون این کاری در آن وقت چندان عجیب نبود بارها آن را تجربه کرده بودند کمی گذشته از ساعت هفت آژیر رفع حمله هوایی به صدا درآمد ساعت هفت و پنجاه دقیقه پایین از رئیس بیمارستان تمام افراد اعم از پزشک ارتشی سرباز و بهدار به صف شدند بعد از عدای احترام به سمت شرق به عنوان یادبود سالروز موعزه ای امپراتور مراسمی برگزار کردند در صف نخست پزشکان ارشد ارتشی و سربازان بهداری بودند بعد آنها بهداران به خدمت فراخوانده شده از دو شهرستان یاماگوچی و شیمانه به صف شدند آخر هم بهداران فراخوانده شده از مناطق هیروشیما به ردیف ایستادند که سراووضعشان آنقدر خوب نبود هنگام ورود برتش به علت نبود تجهیزات کافی یونیفرمی به افراد متولد هیروشیما داده شد که هیچ ستاره ای نداشت اصلا هیچ نشانی نداشت وقتی مراسم تمام شد معاونان به ترتیب به سخنرانی پرداختند در همین زمان به بیست و نه بمبش را انداخت آقای ایواتاکه وضعیت آن موقع را به شکل زیر شهر داده است مراسم بعد از بیست دقیقه تمام شد چون عمل مقابل با حملات هوایی از سرعت لازم برخوردار نبود، معاونان به ترتیب به ایراد سخنان مختلف پرداختند. همان لحظه صدای بیست و نه شنیده شد. به این صدا خوب گرفته بودیم. بیست و نه از جنوب آمد و وقتی درست بالای سرمان رسید، ناخواسته به آسمان نگاه کردیم. چیزی مانند بالان کوچک هواشناسی بیرون انداخت که آرام پایین می آمد بعد نوری سفید مانند آزرخش یا نور حاصل از اشتعال یک باره خروارها منیزیم دیدیم در وجودم گرمای سوزانی را به یاد دارم شنیدن صدای قررش بسیار مهیب را می توانم به خاطرها بعد از آن نمیدانم چه شد و چه مدتی گذشت. در عین حال نمیدانم زمین خوردن و بیهوش شدن بر اثر موج انفجار واقعیت هست یا نه. هنگامی دوباره به هوش آمدم که کسی با پوتین گردن و پشتم را لگد می کرد. در جایی کاملا تاریک زیر چوب ها گرفتار شده بودم. فضای باز محدودی وجود داشت که نمیتوانستم بدنم را حرکت دهم. لحظه بعد با برگشتن هوش و حواسم خط نور خیلی کم رنگی دیدم. با تمام توان به آن سو فشار آوردم و چهار دست و پا خارج شدم. زیر سقف بدون سفالی گرفتار شده بودم. احساس کردم زمان زیادی گذشته. سرانجام توانستم به سطح زمین برسم. الان که فکر می کنم جایی نزدیک آشپزخانه و دفتر امور عمومی بود. وقتی به مسافتی هم که چهار دست و پا از آن آمدم فکر کردم متوجه شدم که همان مسافتی بود که موج پرتابم کرد. درمانگاه و ساختمان دو طبقه آموزش دیگر وجود نداشت. با خاک یکسان شدن، عبارت مناسبی برای بیان وضعیت بود همه جا بسیار ساکت بود و سایه هیچ آدمی هم دیده نمی شود. از سمت بیمارستان و آشپزخانه مثل آغاز شب تاریک دودی سیاه بلند بود سمت راست یونیفرم نظامی هم همراه دود به نرمی می سخت. کیف پولم که در جیب سمت راست بود و عینکم گم شده بودند. با کوبیدن روی یونیفورم نظامیم به دشواری آتش را خاموش کردم. پوست پشت دست راستم خاکستری رنگ و کنده شده بود. به پوست قرمز سایر جاهای دیگر گرد سیاه یک دستی چسبیده بود. داغی سوزان را با شدت در تمام صورتم احساس می کردم. پوست پشت دست چپم و هایم کنده نشده اما انگار آهن بر آن گذاشته باشند، سفید شده بود. حتی وقت راه رفتن از کمر به پایین دردی نداشتم، پشتم به خاطر اصابت چوب ها بسیار درد می کرد. ای نبود، خودم را به دستشویی رساندم و شیر آب را باز کردم، خاک چسبیده به دستم را شستم و لنگ جامانده ای را دورش پیچیدم به شدت نزدیک بین بودم و نمی توانستم دور دست را ببینم هیچ کس هم نبود شاید همه فرار کرده و فقط مرا باقی گذاشته بودند با استفاده از دستشویی جهت را تعیین کردم و توانستم خودم را به ساحل رودخانه اتا برسانم دو سه سرباز آنجا بودند که به چهره می شناختم. افرادی هم نیمه اوریان روی زمین قلدیده بودند هنگام اعلام خطر حمله هوایی از انبار پادگان پتوها را بیرون آورده و در فضای باز گذاشته بودند بی اراده یک تخت از آنها را برداشتم با خستگی روی آن نشستم فشار برای مدتی کم شد و حالم جا آمد از وضعیت بسیار متعجب بودم. افراد آنجا پنج تا شش نفر میشدند اما کسی وجود نداشت که تحلیل درستی درباره آن واقعه بکند. بمب قدرت تخریبی وحشتناکی داشت. برداشتم این بود که بمب نزدیک پادگان اصابت کرده. اما همزمان با برگشت حواسم متوجه شدم خانه های اطراف رودخانه هم. همگی از بین رفتند از سمت پل میتاکی و اطراف معبد هنگان در کرانه دیگر شعلهٔ سرخی دیده می آتش سوزی رخ داده بود اینکه بمب و بمب آتش را با هم انداخته باشند اما اعلان خطر نکرده باشند بسیار عجیب به نظر میرسید سه چهار نفر از همخوابگاهی های گروه پشتیبانی هم نمی دانم از کجا سر و کله اشان پیدا شد. آقای میوشی آمد، آقای ایتو هم آمد. فقط کسانی آمدند که انتهای صف ایستاده بودند. هیچ کدام هیچ حرفی نزدند. بیشک افراد جلو صف بیشترشان زیر آوار مانده و نتوانسته بودند بیرون بیاین. با بدنی زخمی و با دستی خالی از زیر آوار خانه‌ای تخریب شده و شعلور نجات پیدا کردن محال است. اینجا خطرناک بود، پس قرار شد به سمت معبد میتاکی پناه ببریم. شب سوم مارس، هنگامی که آساکوسا، هنجو، موکوجیما و سایر مناطق ناحیه کتوه توکیو بمباران شدند، جنازه های سوخته زیادی دیدم که در رودخانه سومیدا شناور بودند، رودخانه‌ای که یک پارچه آتش شده بود، آنجا را به یاد آوردم، شعلی آتش سطح رودخانه را میلیزی،